خوش از خلبت اگر یار یار من باشد نه من به سوزم و اوشم انجومن باشد من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه برو دست احر من باشد روامدار خدایا که در حریم و رقیب محرم و هرمان نصیب من باشد همایی گو مفکن سایه شرف هرگز در آن دیار که توتی کم از دغن باشد بیان شو چه حاجت که سوز آتش دل توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد هوای کوی تو اثر سر نمی رود آری غریب را دل سرگشت با وطن باشد سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ چغن چه پیش توش مهر بر دهن باشد.